کشتی نو حضرت مرزا غلام احمد کادیانی مسیح موعود و امام مهدی علیه سلات و سلام بسم الله الرحمن الرحیم معرفی کوتاه معلف حضرت مرزا غلام احمد کادیانی امام مهدی و مسیح موعود علیه السلام در بیست بهمن 1213 شمسی برابر با دوازده فوریه 1835 میلادی در روستایی به نام کادیان در رستان پنجاب هند به دنیا آمدند. ایشان از کودکی علاقه خاصی به عبادت و ذکر الهی داشتند و اغلب اوقات خود را صرف تلاوت قرآن کریم و مطالعه آثار مذاهب دیگر می کردند اما با رسیدن به سن رشد مشاهده نمودند که اسلام از هر طرف مورد حمله قرار گرفته و بخت مسلمانان رو به زوال است بنابراین این طبق دستور خداوند متعال مسئولیت دفاع از اسلام و آشکار ساختن زیبایی دین مبین اسلام را به عهده گرفتند و در آثار سخنرانی ها و مناظراتشان با براهین قاطع و روشن ثابت کردند که اسلام تنها دینی نیست که انسان را به خداوند متعال پیوند می‌دهد. حضرت مرزا غلام احمد کادیانی علیه السلام بنا بر وحی الهی اعلام فرمودند که نس قرآن کریم ثابت می‌کند که حضرت عیسی علیه السلام وفات یافته است و ایشان همان مسیح موعود و امام مهدی است که مسیحیان و مسلمانان انتظارش را می‌کشند. ایشان همچنین اعلام فرمودند که تمام پیشگویی‌هایی که در کتاب‌های مقدس مذاهب عالم راجع به ظهور امام مهدی سبز شده است، در وجود ایشان محقق است. حضرت مرزا غلام احمد علیه السلام در سال 1889 میلادی جماعتی به نام جماعت اسلامی احمدیه تأسیس کردند. و به سراحت بیان فرمودند که طبق بشارت سرور کائنات خاتم و نبیین صلی الله علیه و آله و سلام پیامشان با صلح و عشی گسترش خواهد یافت اما در واکنش به پیام محبت ایشان پرخاشگری و خشونت از جانب همه ادیان و فرقه ها به اوج رسید که این رویه تعصب و پرخاشگری هنوز هم در جریان است حضرت مرزا غلام احمد در سال 1908 میلادی دار فانی را ودا گفتند و به سوی معبود حقیقه خیش شتافتند. پس از وفات آن حضرت، مطابق پیشگوی حضرت سید کائنات، فخر و رسول و خاتم الانبیا صلی الله علیه وسلم، نظام خلافت، شروع گشت و اکنون، معموریت و اهداف آن حضرت توسط خلفای ایشان انجام می شود. در حال حاضر جماعت اسلامی احمدیه در دویست و ده کشور به رهبری سیدنا حضرت میرزا مصرور رحمت پنجمین خلیفه امام مهدی و مسیح موعود علیه السلام برقرار است و خلیفه وقت با تمام وجود تلاش می کند اسلام حقیقی را در سراسر جهان گسترش دهد درباره کتاب این کتاب در پنجام اکتبر، 1902 به چاپ رسید نام دوم این کتاب دعوت ایمان و نام سوم تقویتال ایمان است روی سربرگ این کتاب این عبارت مکتوب است رساله آسمانی که در ارتباط با تاون برای جماعت خیش نوشته شده است سپس دو بیت زیر نیز مستور است جهان را دل از این تاؤن دو نیمه است نه این تاون که طوفان عظیم است بیا بشه تاب سوی کشتی ما که این کشتی از آن رب علیم است در ششم فوریه 1889 میلادی حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند که در خواب دیدم که فرشتگان خداوند متعال در نقاط مختلف پنجاب درختان سیاه رنگی را می‌کارند این درختان بینهایت زشت و سیاه رنگ و ترسناک و کوچک بودند از کسانی که داشتن این درختان را می پرسیدم که این چه نوع درختی است در پاسخ گفتند که اینها درخت تاون است که به زودی در کشور شیوع پیدا خواهد کرد این امر بر من متشبه ماند و ندانستم که وی زمان شیوی بیماری را در زمستان سال آینده یا زمستان سال دوم عنوان کرد اما به هر حال منظره بسیار وحشتناکی بود که دیدم سپس آن حضرت فرمودند که خداوند پیش از این نیز درباره شیوی بیماری تا اون به وی وحی فرموده بودند این الله لا یغیرو ما بقامین حد یغیرو ما بی انفسهیم این اول قریه صفحه 261 چاپ چهارم. مطابق بر این پیشگویی بیماری تاؤن در پنجاب شیوع پیدا کرد و در ماه اکتبر سال 1902 هنگامی که شیوع تاؤن به اوج خود رسید دولت در سطح بسیار گسترده شروع به واکسیناسیون تاؤن کرد و در قالب گفتار و نوشتار اعلام نمود که واکسین کردن بر هر فردی ضروری است. اما حضرت امام مهدی و مسیح موعود علیه السلام این واکسیناسیون را نپذیرفتند و در پنج اکتوب رساله تحت عنوان کشتی نوح چاپ نمودند و در آن از اقدامات دولت برای جلوگیری از شیوع تا اون قددانی نمودند و در مورد خود و جماعتشان فرمودند که هیچ شکه نیست که تا به حال بزرگترین و بهترین تدبیری که به فکر دولت رسیده این است که همه واکسینه شوند. نمی توانیم مفید بودن آن را انکار کنیم. به لحاظ رعایت اسباب بر تمامی مردم لازم است با پیگیری آن دولت را از نگرانیی که بابت جانشان دارد رها سازند. ولی ما با تمام ادب و احترام به ساحت این دولت نیکوکار عرض می کنیم که اگر دلیل آسمانی مانع ما نبود از اولین کسانی می بودیم که واکسن استعمال میکردند آن مانع و دلیل آسمانی این است که خداوند میخواهد در این بره از زمان نشانه ای از رحمت الهی را به انسان نشان دهد بنابراین خداوند متعال خطاب به من فرمود تو و شخصی که داخل خانه باشد و با پیروی کامل و اطاعت و تقوای واقعی در تو محف شود از تا اون در امان خواهید ماند در این آخرین ایام این از نشانه های خداوند متعال خواهد بود تا تفاوت بین اقوام و ملت ها را ایان سازد آن کسی که کاملا از تو پیروی نکند از تو نیست و نگران و دلگیرش نباش این حکم الهی است که به موجب آن واکسیناسیون را برای خودم و کسانی که در خانه هم زندگی می ضروری نمی دانن. کشتی نوح صفحه دو و سپس فرمودند چنانچه اینگونه گونه سوال شود که چه است که پایبندی کامل به آن می تواند مایه نجات از تا اون شود در پاسخ به طور مختصر چند ساعت از تعالیم را به صورت زیل می نویسم پس از آن حضرت اقدس علیه سلات و سلام آن تعالیم را نوشتند. این تعالیم آنقدر عالی است که اگر تمام اعضای جماعت به آنها عمل کنند میتواند یک انقلاب عظیم معنوی در جهان پدیدار شود. رساله کشتی نو تقویت ایمان بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسول هیل واکسن تا اون. لن يصيبنا إلا ما کتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فلیتوکل المؤمنون سوره توبه آيه 51 ترجمه هیچ مصیبتی هرگز به ما نخواهد رسید جز آنکه خداوند برای ما نوشته است فقط او مشکل گشا و مولای ماست و بر مؤمنان است که فقط بر او تکیه و توکل کنند جای شکر دارد که دولت عالی انگلیس از راه دلسوزی و شفقت به رعایه خود جهت جلوگیری از شویه تا اون واکسنی را تجویز کرده است و برای بهبودی بندگان خدا با این کار هزینه چند صد هزار روپیه را متقبل شده است. در واقع این کاریست که هر رعیت فهمیده ای وظیفه دارد که با شکرگزاری به استقبال آن برود. و کسی که درباره واکسیناسیون سوء زن داشته باشد بسیار نادان و دشمن جان خیش است چرا که تجربه ثابت کرده است که این دولت محتاط و کار در صدد آن نیست که درمان خطرناکی را پیشنهاد کند بلکه درمانی را ارائه می دهد که بر اساس تجربه مفید بوده است لذا شایسته نیست و دور از انسانیت است که خیرخواهی صادقانه ای را که دولت صدها هزار روپیه برای آن خرج کرده است اینگونه پاسخ دهیم که گوی دولت از این هزینه و مخارش هدف و منظور خاصی دارد آن رعایت بسیار بدبخت است که در بدبینی تا این حد پیش رفته باشد هیچ شکی نیست که تا به حال بزرگترین و بهترین تدبیری که به فکر دولت رسیده این است که همه واکسینه شود نمی توانیم مفید واقع شدن آن را انکار کنیم به لحاظ رعیت اسباب بر تمامی مردم واجب است که با پیگیری آن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 و نگران و دلگیرش نباش این حکم الهی است که به موجب آن واکسیناسیون را برای خودم و کسانی که در خانه هم زندگی میکنن ضروری نمیدانم چرا که همون گونه که همینک گفتم خدایی که خدای آسمان ها و زمین است و هیچ چیزی از علم و احاته او خارج نیست بر من وحی نازل فرموده که هر شخصی را که داخل چهار دیواری این خانه هم باشد از مرگ تا اون نجات خواهد داد. به شرطی که وی از مخالفت با من دست برداشته و با تمام اخلاص و اطاعت و فروتنی بیعت کند و در مقابل فرامین خدا و معمورش به هیچ فش متکبر، سرکش، مغرور، غافل و خودسر و خودخواه نباشد و شیوه عملیش مطابق تعالیم ما باشد وی خطاب به من این مطلب را نیز فرمود که تا اون در کادیان آنگونه فراگیر نخواهد بود که مردم به واسطه آن همچون سگان بمیرند و بر اثر غم و سرگردانی دیوانه شوند به طور کلی تمام اعضای این جماعت هر تعدادی هم که باشند نسبت به مخالفان از تا اون در امان خواهند بود اما از میان ایشان آن افرادی که به طور کامل به عهد و پیمان خود پایبند نباشند یا علتی پنهان در ایشان وجود داشته باشد که خداوند به آن واقف باشد ممکن است دچار طاعون شوند اما سرانجام مردم با تعجب اعتراف خواهند کرد که حمایت خداوند متعال در مقایسه با دیگران با این قوم است و او آنها را با رحمتی خاص نجات خواهد داد که نظیر آن پیدا نمی شود به خاطر چنین سخنی ادهی لب به اعتراض خواهند گشود و برخی تمسخر خواهند کرد و ادهی مرا دیوانه خواهند پنداش و بعضی در کمال حیرت و تعجب نزد من آمده و خواهند پرسید که آیا واقعا چنین خدایی وجود دارد که بدون رعایت اسباب هم رحمتش را نازل کند؟ پاسخ این سال این است که آری بدون شک چنین خدای قادری وجود دارد و اگر این گونه نمی بود آن کسانی که با وی ارتباط دارند زنده زنده می مردند. او خدای قادر است و قدرت های پاکش شگفتنگیستند او از یک سو مخالفان نادانش را بر دوستانش همچون سگان مسلط می کند و از سوی دیگر به فرشتههایش دستور می دهد که به دوستانش خدمت کند. همینطور زمانی که خشم و او بر دنیا مستولی می شود و عذاب او بر ظالمان می بارد، نگاهش از افراد خاص محافظت می کند و اگر این گونه نمی بود، کارخانه اهل حق به هم میریخ و هیچ کسی نمیتوانست آنان را بشناسد. قدرت های نامحدود، محدود اما به اندازه یقین و ایمان مردم به ظهور میرسند. قدرت های تنها برای کسانی ظاهر میشود که یقین و محبت و توفیق تبتل به آنها عطا شده است و از عادات نفسانی خارج گردیده اند. خداوند هرچه بخواهد انجام میدهد و تصمیم او بر این است که قدرت های خارقل را تنها به کسانی نشان دهد که به خاطرش از عادات ناشایست خیش دست بکشند. در این بره از زمان تعداد اندکی یافت می شوند که وی را میشناسند و به قدرت شگرف او ایمان دارند. در مقابل افراد فراوانی هستند که هرگز به خدای قادر ایمان ندارند. برای خدایی که صدای هر چیزی را میشنود هیچ کاری ناشدنی نیست در اینجا لازم است گفته شود که اگر درمان امراضی چون تا اون و غیره گناه محسوب نمی شود و در حدیثی هم آمده که هیچ مرزی وجود ندارد که خداوند برای آن درمانی قرار نداده باشد ولی من این را گناه میدانم که نشانه ی عظیم خداوند را با واکسیناسیون مشتبه کنم من نمی خواهم به آن نشانه راستین و وعده صادق خدای تعالی که او میخواهد برای اثبات حقانیت من آشکار سازد با استعمال واکسن اهانت کنم و اگر من این گناه را مرتکب شوم، مورد معاخزه قرار خواهم گرفت. چرا که این بدان معنی است که من به این وعده خداوند که به من داده بود، ایمان نیاورده ام و اگر از واکسن استفاده کنم و از تا اون موسون بمانم در آن صورت باید سپاسگزار آن طبیب باشم که این واکسن را اختران موده است. نشکر گذار خدایی که به من وعده داده بود هر آن کسی را که در چهار دیواریم باشد از تا اون در امان نگه می دارد. من با بصیرت کامل می گویم که وعده های خدای قادر راستین است و روزهای آینده را آنگونه می بینم که گوی فرار رسیده و به خوبی به این حقیقت واقفم که هدف اصلی دولت ما این است که هر طوری شده مردم از تا اون نجات پیدا کنند و چنانچه در آینده برای ری موسون ماندن از تا اون راه بهتری از واکسن را پیدا کند آن را با اقبال باز خواهد پذیرفت بدین ترتیب روشن است این روشی که خداوند برای من قرار داده است. در تضاد با اهداف این دولت عالی قدر نیست. من 20 سال پیش در مورد این بلای عظیم تاون تا در کتاب براهین احمدیه پیشگویی کرده و خبر داده بودم و ذکر وعده برکات خاص برای جماعتم هم نیز در آن کتاب وجود دارد. رجوع کنید به صفحه 518 و 519 براهین احمدیه. علاوه بر آن خداوند متعال با تحکید بسیار بر این پیشگویی فرموده است که افراد با اخلاص موجود در خانه امرائی که نسبت به خداوند و مأمورش تکبر ندارند از بلای تا نجات خواهد داد. این جماعت به طور نسبی و در مقایسه با دیگران به طرز ویژه ای مورد فضلش قرار خواهد گرفت. اگرچه در این جماعت نیز اگر اهدی به ندرت و به طور استثنایی به دلیل ضعف ایمان، و نقصان در عمل یا از روی عجل مقدر یا به دلیل دیگری که فقط خدا از آن باخبر است در اثر تا اون بمیرد آن مورد است چرا که آن نادر می باشد و حکم معدوم را دارد همیشه در هر زمان در امر مقایسه آن چیزی که لحاظ می شود کسرت است چنان که دولت خود نیز تجربه کرده و متوجه شده است که مرگ در افرادی که واکسن می‌زنند بسیار کمتر از کسانی است که از واکسن استفاده نمی‌کنند کنند. همینطور چنان چه در کادیان عده بسیار کمی از طاعون بمیرند یا احدی از اعضای جماعت هم بر اثر این طاعون بمیرد با وجود آن عظمت این نشانه تضعیف نخواهد شد این پیشگویی با رعایت دقیق کلمات وحی شده است لذا از انسان عاقل بعید است که به سخنان آسمانی بخندد این کلام آسمانی است نه سخنان یک منجم این سخنان از روشنی شع می می‌گیرند نه از حدس و گمان تاریکی این کلام کسی است که این بیماری را فرستاده و کسی است که می‌تواند آن را دور سازد دولت ما بدون شک آن زمان که مشاهده کند اعضای این جماعت نسبت به کسانی که واکسیناسیون کردند در صحت و سلامتی بیشتری قرار دارند تعجب خواهد کرد و به اهمیت این پیشگویی پی خواهد برد به درستی میگویم که اگر همه چیز مطابق با این پیشگویی که از حدود 20 و یا 22 سال شهرت پیدا کرده است به ظهور نرسید در آن صورت من از جانب خدا نیستم در واقع این نشانه ربانی بودن ما را اثبات خواهد کرد. افراد با اخلاصی که در چهار دیواری خانه ام زندگی می کنند از این بیماری محفوظ خواهند ماند و تمام جماعت هم در مقایسه با دیگران از حمله تاون تا در امان خواهد بود. این گونه صحت و سلامتی که در جماعت ما یافت خواهد شد در هیچ گروه دیگری نظیرش پیدا نخواهد شد. و در کادیان آفت وحشتناک تا اون آنگونه که بسیاری را حلاک سازد نخواهد آمد ولی به صورت بسیار کم و نادر می تواند ظهور یابد. ای کاش این مردم دلهای پاکی می داشتند و از خدا می ترسیدند تا همگی از این عذاب نجات می یافتند چرا که هیچگاه در دنیا به خاطر اختلاف مذهب بر کسی عذابی نازل نمی شود. باستخاص و محاسبه آن در روز قیامت صورت می گیرد. عذاب در دنیا تنها به دلیل شرارتها و تماسخور گناه گناهان نازل می شود. یاد داشته باشید که در قرآن شریف و حتی در بعضی از نصایح تورات نیز آمده است که تا اون در زمان مسیح موعود منتشر می شود. بلکه حضرت عیسی علیه السلام نیز همین خبر را در انجیل داده اند و امکان ندارد که پیشگویی های پیامبران تحقق نیابد. مؤلف شریف در رابطه با تورات در پاورقی می نویسند خبر ایشویه تا اون در زمان مسیح موعود در کتاب تورات ذکر شده است زکریا دوازده الا چهارده متا هشت الا بیست و چهار مکاشفات هشت الا بیست و دو ادامه مطلب و این نیز به خاطر داشته باشید که بر ما به این دلیل نیز واجب است که مطابق وعده های الهی از پیش کردن تدابیر انسانی پرهیز کنیم تا هیچ دشمنی نتواند این نشانه الهی را به تدابیر ما نسبت دهد ولی اگر خداوند در کلامش راهی را پیش روی ما قرار دهد و یا داروی را در اختیارمان بگذارد استفاده از آن هیچ خللی در این نشانه ایجاد نخواهد کرد زیرا آن امر از طرف آن خدا خواهد بود که این نشانه را به ظهور رسانده است کسی نباید به این توهم دچار گردد که اگر استثناا کسی از جماعت ما به بیماری تا اون دچار شد و فوت کرد از ارزش این نشانه کاسته می شود چرا که در ادوار گذشته به موسی و یشوع و در پایان به پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دستور داده شده بود که کسانی که شمشیر برداشته اند و خون صدها نفر ریخته اند باید با شمشیر کشته شوند. و این نشانه ای از سوی انبیا بود که پس از آن فتح بزرگی نصیبشان شد. در حالی که اده از اهل حق نیز با شمشیر مجرمان کشته شدند ولی تعدادشان نسبت به کشت شدگان دشمن بسیار کم بود. و با این میزان خسارت هیچ خلالی در نشانه وارد نمی شود. بنابراین اگر کسی استثناعا در جماعتمان به علل ذکر شده دچار تا اون شود چیزی از ارزش این نشانه الهی کم نمی کند آیا این نشانه بزرگی نیست که به تکرار میگویم که خداوند این پیشگویی را به گونه محقق خواهد ساخت که برای هر طالب حقی هیچ شک و تردیدی درباره تحقق آن باقی نخواهد ماند و وی متوجه خواهد شد که خداوند با این جماعت معجز گونه رفتار نموده است بلکه به عنوان نشانه الهی نتیجه این تاون آن خواهد بود که به واسطه آن این جماعت افسایش پیدا خواهد کرد و به طرز خارق العاده پیشرفت خواهد کرد و این پیشرفت با دیده تعجب نگریسته خواهد شد همانطور که در کتاب نزول مسیح نوشته ام اگر طبق این پیشویی خداوند بین این جماعت و جماعت دیگر تفاوتی نشان ندهد آنگاه مخالفان که هر بار شکست می خورن، حق خواهند داشت که مرا تکذیب کند اما تا به حال هرچه من را تکسیب کرده اند، فقط لعنت خدا را خریده اند. مثلا زمانی که سر و صدا راه انداختند که آتم در طول پانزده ماه نمرده است، علا رقم این که در پیشگویی کاملا روشن و واضح بیان شده بود که اگر وی به حق بازگردد در پی پانزده ماه نخواهد مرد، وی در طی جلسه مناظره در برابر هفتاد نفر شخصیت محترم، از الساق لفظ دجال به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم عبا کرد و البته فقط همین مورد نبود بلکه او تا پانزه ما با سکوت و نشان دادن ترس رجوع خود را ثابت کرد علت اصلی پیشگویی هم این بود که او حضرت محمد صلی الله علیه و سلام را دجال خوانده بود لذا وی با این رجوع تنها به این اندازه سود برده بود که فرصت پیدا کرد پس از گذشت پانزه ما بمیرد و بالاخره مرد. مرگش به این دلیل بود که در پیشگویی آمده بود که از طرف این مناظره آن که اعتقاد دروغینی داشته باشد زودتر خواهد مرد. بنابراین او زودتر از من از دنیا رفت. همینطور آن اخبار غیبی که خداوند به من اطلاع داده بود و در زمان لازم به تحقق پیوستان کمتر از ده هزار نیستند. اما پیشگویی هایی که با قید شواهد و مدارک به طور نمونه در کتاب نزول مسیح که در حال چاپ است نوشته شده، از تنها 150 مورد هستند و هیچ کدام از پیشگویی های من نبوده است که به تحقق نرسیده باشد و یا از بین دو قسمت آن یک قسمتش تحقق نیافته باشد. اگر کسی در جستجوی آن پیشگویی باشد که تاکنون تحقق نیافته است، اگر آنقدر تحقیق کند که اجلش برسد، باز یک پیشگویی را هم پیدا نخواهد کرد که محقق نشده باشد. با این همه اهدی می تواند از راه بی شرمی و بی یا از روی ناآگاهی هرچه بخواهد بگوید. من با اطمینان کامل می گویم که هزاران پیشگویی از این قبیل وجود دارد که آشکارا تحقق یافتند و صدها هزار انسان شاهد آنها بوده اند. اگر نظیر آن بین پیامبران گذشته جستجو شود هیچ جا و در هیچ کس بجز در شخص حضرت محمد صلی الله علیه و سلم یافت نخواهد شد. چنان چه مخالفان میخواستند با همین روش این قضیه را حل کنند از مدت‌ها پیش چشمانشان باز میشد. اگر آنها می‌توانستند مانند چنین پیشگویی‌ها را پیدا کنند من حاضر بودم جایزه بزرگی به آنها بدهم. در مورد کسانی که فقط از روی شرارت و حماقت میگویند که فلان پیشگویی تحقق نیافته، جز این چه میتوانیم بگوییم که آنان این سخنان را از روی خباست و بدگمانی میگویند. چنانچه آنها در جایی درباره این تحقیق سخنرانی میکردند و مجبور میشدند که سخنان خیش را پس بگیرند یا بیشرم و بی‌حیا خوانده شوند. تحقق مو به موی هزاران پیشگویی و داشتن هزاران شاهد بر آنها چیز کمی نیست این امر پیشگویی نشان دادن خدای عزوجل است بجز در عصر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آیا احدی دیده است که هزاران پیشگویی بیان شده باشند و همه مثل روز روشن تحقق یابند و هزاران نفر به تحقق آنها گواهی هم دادند من مطمئنم آنگونه که در این زمان خداوند متعال از نزدیک بر بندگان خود ظهور می کند و سطح امور غیبی را آشکار می سازد، در زمانهای گذشته بسیار کم صورت گرفته است. مردم به زودی خواهند دید که در این بره از زمان چهره خداوند ظاهر می شود، گویی از آسمان پایین خواهد آمد. وی مدتها خود را پنهان نگه داشت و وجودش مورد انکار قرار گرفت. اما وی سکوت پیشه کرده بود. ولی از این به بعد وی خود را پنهان نخواهد ساخت و جهانیان نمونه از قدرت او را مشاهده خواهند کرد که آبا و اجدادشان هیچگاه ندیده بودند. این اتفاق به این علت خواهد افتاد که زمین فاسد گشته و مردم ایمان خود را نسبت به خالق زمین و آسمان از دست داده اند. ذکرش فقط روی لپ اما دلها از او برگشته است فلزا خداوند فرمود که از این پس آسمان جدید و زمین تازه می آفرینم. معنی این آفرینش این است که زمین مرده است یعنی مردم روی زمین سنگ دل گشته اند و گوی مرده اند چرا که چهره خدا از میانشان پنهان شده و تمام نشانه گذشته به قصه های بدل گشته است بنابراین اراده خداوند این گونه رقم خورده که زمین جدید و آسمان تازه خلق کند چیست آن آسمان جدید و چیست آن زمین جدید؟ زمین جدید دلهای است که خداوند با دست خود آماده می کند آنها توسط خدا به ظهور می رسند و خدا توسط آنها به ظهور می رسد و آسمان جدید نشانه هایی که توسط بنده و با اجازه او به ظهور میرسد. ولی افسوس که دنیا با این تجلی جدید خدا دشمنی و عداوت پیش کرده است. دنیا چیزی به جز قصه در چنته ندارند و خدایشان ساختی که تصورات خودشان است. دلهایشان منحرف شده است و حمتهایشان خسته و بر چشمانشان پرده های قرار گرفته است. ملت های دیگر خودشان خدای حقیقی را گم کرده اند چرا که فرزند آدمی را خدای خود قرار داده اند لذا لزومی به ذکرشان نیست. وضع مسلمین را بنگرید که چقدر از خدا دور گشته اند آنها دشمن صداقت هند. و همچون دشمن جانی با راه راست مخالفت میورزند. به طور مثال ادعاهایی که علمای انجمن ندوت الالما برای اسلام کرده اند و یا پولی که انجمن حمایت اسلام به نام اسلام از مسلمانان می گیرد آیا اینان خیرخواه اسلامند؟ آیا اینان از ذرات مستقیم حمایت می کنند؟ آیا متوجه هستند که اسلام زیر چه مسیبت لگد لگت کوب شده است؟ و آیا خبر دارند که سنت خداوند متعال برای دمیدن جان تازه در کال بوده اسلام چیست؟ من به حق میگویم گویم که اگر من نیامده بودم، ادعاهای آنها در مورد حمایت اسلام تا حدی قابل قبول بود. اما اکنون اینان مجرم خدایند، چرا که با وجود ادعای حمایت از اسلام، آن زمان که ستاره حمایت از اسلام از آسمان ظاهر شد، پیش از هر کس منکر شدند اکنون چه جوابی به خدایی خواهند داد که مرا در زمانی که لازم بود فرستاد آنها نسبت به این مسئله بی اند و هیچ اعتناعی به این فرستاده الهی ندارند آفتاب طلوع کرده و نزدیک ظهر است اما میگویند که شب است چشمه خداوند فوران کرده اما آنها هنوز در حال گریه کردن در صحرا هستند. دریای علوم آسمانی روان است، اما اینان هیچ گونه خبری از آن ندارند. نشانه های خداوند در حال ظهور است، اما این افراد به کلی از این نشانه ها غافلند. و نه تنها غافل، بلکه با جماعت خدا دشمنی و عداوت هم دارند، آیا این از حمایت اسلام و ترویج اسلام و تعلیم اسلام که توسط آنان انجام می شود؟ آیا اینان می توانند با رویگردانی خود مانع اراده راستین خدا شوند که از همان ابتدا سایر پیامبران بر عملی شدن آن شهادت داده اند؟ خیر بلکه به زودی پیشگویی خدا به وقوع خواهد پیوست که كتب الله لا اغلبنا انهر مجادله آیه 22 مترجم ترجمه این آیه را اینطور نوشته که خداوند متعال مقدر نموده است که من و پیامبرانم غلبه پیدا خواهیم کرد. چنان که خداوند ده سال پیش برای تایید و تصدیق بنده خود در آسمان در ماه رمضان نشانه خصوف و کسوف را ارائه داده، و ماه و خورشید را برای حقانیتم هم شاهد قرار ساخته و دو نشانه را به ظهور رسانده بود همینطور وی طبق پیشگویی های پیامبران دو نشانه را نیز بر زمین ظاهر کرد یکی آن که در قرآن شریف می و از العیشه عدلت عد سوره تکویر آیه پنج مترجم ترجمه این آیه را اینطور نوشته که و هنگامی که شطران آبستنی که ده ماه از حمل آنها گذشته است به دست فراموشی سپرده می شوند و در حدیث می خانید ولی در کنال قصه از مترجم ترجمه را این گونه نوشته شطرها رها می شوند و برای سواری استفاده نخواهند شد و برای تحقق آن در سرزمین هجاز یعنی بین راه مدینه و مکه قطاری در حال احداث است. نشانه دوم تا اون است چنان که خداوند میفرماید و این مینظریت الا نحن مهلكها قبل یوممل قیامتی اومرزیها سره بنی اسرائیل آیه 59 مترجم، ترجمه را این گونه نوشته هر شهر و دیاری را که اهل آن ستمکار باشند پیش از روز قیامت نابود می‌گردانیم یا اهالی آن را به عذاب سختی گرفتار می‌نماییم پس خداوند هم قطار را به کشور فرستاد و هم تا اون را تا زمین آسمان هر دو گواه باشند بنابراین با خدا نجنگید جنگیدن با خدا احمقانه است پیش از این وقتی خداوند میخواست آدم را خلیفه قرار دهد، فرشتهها مخالفت کردند. اما آیا خداوند به خاطر سخنان آنان کوتاه آمد؟ حال خداوند به هنگام آفریدن آدم دوم فرمود؟ ارتت انستخلف فخلقت آدم یعنی میخواستم ای برگزینم، لذا آدم را خلق کردم. اکنون بگویید آیا می توانید مانع اراده خداوند شوید؟ پس چرا به گمانهایتان شاخ و برک میدهید و راه یقین را در پیش نمی گیرید؟ به یاد داشته باشید قطعا هیچ کس نمی تواند اراده خداوند شود. ادعاهای این چنین راه و روش تقوا نیست. البته اگر شکی شک دارید روش برطرف ساختن آن اینگونه است که همچنان که من از طریق الهام خداوند درباره پیروانم که بر اساس سخنانم عمل می کنند بشارت یافتم که از عذاب اون موسون خواهند ماند و این مجد را چاپ نیز نمودم شما همچنان چه خیرخواه قوم خود هستید برای نجات افراد هم مذهب خود از خداوند بشارت دریافت کنید مبنی بر اینکه که از تاؤن محفوظ میمانند و این بشارت را همچون من در آگهی ها چاپ کنید تا مردم متوجه شوند که خداوند با شماست. البته این فرصت خوبی برای مسیحیان هم هست چرا که آنها همواره میگویند که نجات و رستگاری منوط به مسیح است. اکنون وظیفه آنان نیز می باشد که در این ایام مصیبت بار مسیحیان را از تا اون نجات دهند. از میان تمامی فرقه ها آن فرقه در درگاه الهی مقبول خواهد بود، که در این راستا دعایش بیشتر از دیگران مستجاب گردد. اکنون خداوند این فرصت را به همه داده است تا بیخود و بیهوده بر روی زمین بحث و مناظره نکنند بلکه بیایند بیشتر از دیگران استجابت دعای خود را به اثبات برسانند تا هم از طاعون نجات یابند و هم حقانیتشان آشکار گردد. خصوص کشیشان مسیحی که مسیح ابن مریم را منجی دنیا و آخرت قرار اند. اگر به واقع ابن مریم را صاحب دنیا و آخرت میدانند، آنگاه مسیحیان حق دارند که به دلیل کفاره مسیح نمونه نجات است تا اون را ببینند و به این ترتیب برای دولت محترم نیست بسیار آسان خواهد گشت که فرق مختلف هند بریتانیا که به صداقت مذهب خود اطمینان دارند در درگاه خدایی که به او ایمان دارند یا در محضر معبود دیگری که او را به جای خدا می برای نجات گروه خود از تا اون و برای مصیبت زده ها شفاعت بطلبند و با گرفتن عهدی از خدای خود آن را در آگهی ها به چاپ برسانند آنچنان که ما چاپ کرده ایم این کار نشانه خیرخواهی مخلوق و معرف حقانیت مذهب است و کمکی به دولت نیز می باشد. مگر دولت چه میخواهد، جز اینکه که رعیتش از تا اون نجات پیدا کند؟ حال، این نجات از تا اون به هر روشی که باشد تفاوتی نمی کنند. بنابراین به خاطر داشته باشید که ما افراد جماعتمان را که در بخشهایی از پنجاب و هندوستان پخش شده اند، از واکسیناسیون من نمی کنیم. دولت به مردمی که به طور قطعی دستور دهد که باید واکسین شوند، باید از حکم دولت اطاعت کنند، و آن کسانی که در این راستا مختارند اما چنانچه آنها به طور کامل پایبند به آن تعالیم نیستند که از طرفم به آنها داده شده است برای آنها نیز سزاوارتر این است که واکسن بزنند تا لغزش نخورند و به دلیل ضعف خیش مردم را در مورد وعده خدا فریب ندهند و اگر سوال شود که آن کدام تعالیم است در پاسخ چند سطر به طور مختصر به صورت زیر می نویسم تعالیم لازم به ذکر است اقرار و از آن زبانی به بیعت هیچ گونه ارزشی ندارد مادامی که با ازم و جزم قلبی و به طور کامل به آن عمل نشود بنابراین آن کسی که به تعالیمم به طور کامل عمل می کند وارد خانه می شود که خداوند درباره چنین شخصی وعده می دهد اینی احافظ گل منفید در یعنی از هر کسی که در چهار دیواری خانه ات باشد، محافظت خواهم نمود. از این الهام نباید این استنتاج انتاج کنید که تنها آن کسانی مستحق این الهامند که در این خانه ساخته شده از خشت و خاک من زندگی می کنند. بلکه آن کسانی نیز شامل این الهام می باشند که از من به طور کامل پیروی می کنند. آنها در خانه روحانی هم زندگی می کنند. پیروی از من به این صورت است که اطمینان داشته باشند که خدایی وجود دارد قادر و قیوم و خالق همه چیز و صفات او از لا و ابدی و غیر متغیرند. او نه فرزندی دارد و نه فرزنده کسی است. او از تحمل رنج و به صلیب کشیده شدن و مرگ پاک و منزه است. او با وجود دور بودن نزدیک و با وجود نزدیک بودن دور است. و با اینکه یگانه و یکتاست ولی تجلیاتی جداگانه دارد هنگامی که در انسان تحول تازهی به وجود بیاید او هم برای وی خدای جدیدی می شود و با تجلیه جدیدی با او رفتار می نماید به عبارت دیگر انسان به اندازه تحول درونی در خدا نیز تحولی میبیند اما این تحول بدین معنا نیست که تغییری در ذات خداوند روی میدهد ذات او از ازل غیر متغیر و دارای کمال تام است ولی به هنگام تحولات انسان به سوی نیکی خدا نیز با تجلی جدیدی بر او ظاهر می‌گردد برای هر حالت پیشرفته ی انسان تجلی خدای قادر هم پیشرفته تر از گذشته ظهور می‌یابد وی قدرت خرق عادت خود را تنها آن هنگام بروز می‌دهد که تحول خرق عادت روی داده باشد همین است ریشه ی حوادث خرق عادت و موجزه هاست این خداست که ایمان آوردن به او از شرط جماعت ماست به او ایمان آورید و او را بر نفستان آرامشتان و تمامی روابطتان مقدم مدارید و در عمل شجاعانه در راهش صدق و وفاداری نشان دهید مردم دنیا او را بر اسباب و عزیزان خیش مقدم نمیدارند. اما شما وی را مقدم مدارید تا در آسمان از جماعتش شمرده شوید از گذشته عادت خدا بر این موده هست که نشانه های رحمتش را به نمایش بگذارد اما در صورتی می توانید از این عادتش بهره ببرید که بین شما و او هیچ فاصله و جدایی وجود نداشته باشد رضای شما رضای او باشد و آرزوهایتان آرزوهای او باشد و همواره در هر حالت چه به مرادتان برسید بچه در حالت نامرادی باشید سر خود را تسلیم آستان او کنید تا او هرچه بخواهد انجام دهد اگر این کار را انجام دهید خدا در وجودتان ظهور می کند خدایی که مدت هاست چهره اش را پنهان کرده است. آیا از بین شما کسی هست که به این نکته عمل کند و طالب رضای او گردد و از غذا و قدر او ناراحت نشود؟ بنابراین شما حتی با دیدن مصیبت هم به جلو گام بردارید که این کار موجب به پیشرفتتان می باشد. و برای نش و گسترش توحید بر روی زمین با تمام توانتان تلاش کنید و به بندگانش رحم کنید و به آنها با زبان یا دست و یا به هیچ صورت دیگری ظلم نکنید و برای خیرخواهی مخلوق پیوسته تلاش کنید و با هیچ کسی متکبران رفتار نکنید. حتی اگر زیر دستتان باشد به کسی فوش ندهید حتی اگر وی به شما فوش هم بدهد فقیر و حلیم و خیرخواه و همدرد مخلوق باشید تا مورد قبول خدا واقع شوید بسیارند کسانی که به ظاهر مهربانند اما از درون گرگ صفتند بسیارند کسانی که در ظاهر پاکند اما در باطن مار صفتند بنابراین تا زمانی که ظاهر و باطنتان یکی نباشد نمی توانید مورد پذیرش خداوند متعال قرار بگیرید. به کوچکتر از خود رحم کنید، نه اینکه تحقیرشان کنید. و اگر دانا هستید به نادانان نصیحت کنید، نه اینکه با خودنمایی آنان را ذلیل و خار نمایید. و اگر ثروتمندید به فقرا خدمت کنید، نه اینکه با خودخواهی به آنان فخر بفروشید. از راه های بترسید، از خدا بیم داشته باشید و تقوا پیشه کنید و مخلوق را نپرستید و به مولای خیش تبتل و تزر نمایید و از دنیا بیزار باشید و مال خدا شوید و برای او زندگی کنید و به خاطر او از هر ناپاکی و گناه متنفر باشید چرا که او پاک است باید هر صحبتتان شهادت بدهد که شب را با تقوا به سر رساندید و هر غروبتان شهادت دهد که روزتان را با ترس و لرز گذراندید از لعنت های دنیا نترسید که مانند دود به سرعت از بین می و یک روز هم نمی توانند دوام بیاورند بلکه از لعنت خدا بترسید که از آسمان نازل می شود و به هر کسی نازل شود ریشه او را در هر دو جهان می خوش کند نمی توانید خودتان را با ریاکاری نجات دهید چرا که آن خدایی که خدایتان است می تواند اعماق قلب انسان را ببیند لذا آیا می توانید او را فریب دهید؟ بنابراین پاک و صاف و مثل کف دست باشید اگر ذری تیرگی در وجودتان باقی مانده باشد تمام روشناییتان را از بین خواهد برد و اگر در رفتار و کردارتان نمودی از تکبر یا ریا یا خودخواهی و یا تنبلی است در این صورت موجودی نیستید که لایق پذیرش الهی باشید ما با تو خودتان را بر اساس چند مورد فریب دهید که هرچه میخواستیم می‌خواستیم انجام دهیم انجام دادیم زیرا خداوند متعال می‌خواهد در وجودتان انقلاب کاملی روی دهد او خواستار نوعی مرگ از شماست که پس از آن شما را مجدداً زنده می‌کند با هم دیگر هم مصالحه کنید و گناهان برادران خود را ببخشید. چرا که شرور از آن انسانی که راضی نمی شود با برادر خود صلح کند؟ چنین شخصی از جماعت بریده می شود چرا که تفرق پراکنی می کند نفس پرستی و شهوتگرایی را در تمام ابعادش رها کنید و ناراحتی از همدیگر را پایان دهید و در حالی که راستگو و موهق هستید به مانند دروغ گویان تزلل و توازن نمایید، تا مورد بخشش خداوند قرار گیرید فربهی نفسانی را رها کنید چرا که به دری که شما فراخوانده شده اید، انسان فربه نمی از آن در رد شود چه بدبخت از کسی که این سخنان را قبول ندارد حرفهایی که خداوند گفته و من بیان کردم اگر می خواهید که خداوند در آسمان از شما راضی باشد باید با هم به گونه متحد شوید که گوی دو برادر از یک شکم هستید از بین شما آن کسی بزرگتر است که گناهان برادرش را بیشتر می و بدبخته از کسی که لجبازی می کند و نمی بخشد پس او از من نیست از لعنت خدا بسیار بترسید که او قدوس و قیور است انسان بدکار نمی تواند قرب خدا را به دست آورد ظالم نمی تواند قرب خدا را به دست آورد. خائن نمی تواند قرب او را به دست آورد. و هر کسی که برای نام خداوند غیرت ندارد، نمی تواند قرب او را به دست آورد. کسانی که همچون سگ یا مورچه یا لاشخور به دنیا روی می آورند و با آن به آرامش می رسند، نمی توانند قرب او را به دست آورند. هر چشم ناباکی از خدا دور است. هر دل ناپاکی از او بیخبر است کسی که به خاطر او در آتش است از آتش نجات داده می شود کسی که به خاطر او می خواهد خندید کسی که به خاطر او رابطه خود را با دنیا قطع می کند سرانجام به خدا می رسد شما با پاکی دل و صداقت کامل و گامی پر از فعالیت دوست خدا شوید تا او هم با شما دوست شود به دستان و همسران و برادران فقیرتان رحم کنید تا در آسمان به شما رحم شود به راستی از آن خدا شوید تا او هم از آن شما گردد دنیا جای هزاران ملاس که تا اون یکی از آنهاست پس با صداقت به ریسمان الهی چنگ بزنید تا وی این بلاها را از شما دور گرداند هیچ آفتی بر روی زمین به وجود نمی آید تا زمانی که دستور آن از آسمان نازل نشود و هیچ آفتی دور نمی شود مادامی که از آسمان رحم نازل نشود بنابراین کار عاقلانه این است که به ریشه چنگ بزنید نه به شاخه استفاده از دارو و اندیشیدن تدبیری خطایی نیست اما تکیه و توکل به آنها ممنوع است سرانجام همان خواهد شد که خداوند اراده میکند اگر کسی توانایی توکل داشته باشد مقام توکل از هر مقامی بالاتر است یکی از تعالیم ضروری و مهم این است که قرآن شریف را متروک و رها کنید چرا که زندگیتان وابسته به قرآن شریف است کسانی که به قرآن کریم احترام میگذارند در آسمان به آنها احترام گذاشته میشود کسانی که قرآن را بر هر حدیث و قولی مقدم میشمارند، در آسمان مقدم شمرده میشوند. حال بر روی زمین هیچ کتابی برای نوع انسان وجود ندارد مگر قرآن و هیچ رسول و شفیعی نیست مگر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پس تلاش کنید که به آن پیامبر صاحب جاه و جلال عشق راستینی بورزید و کسی دیگر را بر روی هیچ نوع بزرگی و فضیلت ندهید. تا در آسمان از رستگاران شمرده شوید به خاطر بسپارید که رستگاری چیزی نیست که پس از مرگ ظاهر شود بلکه رستگاری حقیقی آن است که در همین دنیا روشنایی خود را نشان دهد رستگار کیست کسی که یقین و اطمینان دارد که خدا حق است و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بین او و تمام خلایق شفی هستند و در زیر آسمان نه پیامبری هم مرتبه اوست و نه کتابی هم مرتبه قرآن است خداوند برای هیچ کس دیگر نخواسته که تا ابد زنده باشد اما این پیامبر برگزیده برای همیشه زنده است و خدا برای همیشه زنده نگه او این گونه تدارک دیده که فیض تشریعی و روحانی او را تا قیامت جاری نموده است و در پایان در اثر فیض رسانی روحانیش آن مسیح معود را در دنیا مبعوث نمود که به اصطه او برای تکمیل ساختمان اسلامی ضروری بود. چرا که لازم بود این دنیا از بین نرود و همچنان که به سلسله موسوی یک مسیح عطا شده بود همانطور به گونه روحانی به سلسله محمدی نیز یک مسیح داده شود. این آیه به همین موضوع اشاره می کند اهدنه ثرهت المستقیمه، ثرهت اللذین عنم سوره فاتحه آیات 6 و 7 مترجم ترجمه آیه را اینگونه نوشته راه مستقیم را به ما نشان بده راه کسانی که مورد انعامت قرار گرفتند موسا متایی را به دست آورد که مردم قرون اولی از دست داده بودند و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را به دست آوردند که سلسله موسی از دست داده بود حال سلسله محمدی قایم مقام سلسله موسوی است. اما به لحاظ شن و مرتبه مسیل موسا هزاران درجه بالاتر از موسا و مسیل ابن مریم بالاتر از ابن مریم است. همانگونه که مسیح ابن مریم پس از موسا در قرن چهاردهم ظهور کرد مسیح موعود نه تنها به لحاظ مدت زمانی پس از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در قرن چهاردهم ظهور کرد بلکه در زمانی ظهور نموده است که وضع مسلمین دقیقا آنگونه است که یهود در زمان ظهور مسیح ابن مریم داشتند معلف شریف در رابطه با قرن چهاردهم در پاورقی می نویسند یهود بر اساس تاریخ خود قبول دارند که عیسی بر سر قرن چهاردهم پس از موسی ظاهر شد. نگاه کنید به تاریخ یهود. ادامه‌ی مطلب. لذا آن مسیح موعود من هستم. خدا هرچه چه بخواهد انجام می دهد. نادان است کسی که با او بجنگد و جاهل است کسی که در مقابل او اعتراض کند و بگوید که این گونه نیست، بلکه لازم بود آن باشد. او مرا با نشانه های درخشانی فرستاده است که فراتر از ده هزار نشانه می باشند. تا اون نیز از جمله این نشانه هاست. پس شخصی که با صدق کامل با من بیعت می کند و از صمیم قلب پیرو و دستورات هم می شود و در اطاعت من مف می شود و تمام خواسته های خود را رها می کند وی همان کسی است که روح هم در این ایام آفت سخت از او شفاعت می کند. ای کسانی که خودتان را از جماعت من بیمپندارید زمانی در آسمان از جماعتم شمرده می شوید که از صمیم قلب در مسیر تقوا گام بردارید. پس نماز پنجگانه را با آنچنان ترس و حضور قلب ادا کنید که گویی خدا را می بینید و روزه را با صداقت کامل برای خدا به اتمام برسانید و بر هر کسی که زکات واجب است زکات پرداخت کند و کسی که بر او هشت است و هیچ مانه در کار نیست حج را عدا کند. نیکی را به درستی انجام دهید و بدی را در حالی که از آن بیزاری می جوید، ترک کنید. به یقین به خاطر بسپارید عملی که آری از تقوا باشد به خداوند نمیرسد. اصل اصل ریشه هر کار نیکو تقوی است. عملی که در آن این ریشه تقوا از بین نمی رود، آن عمل نیست تباه نمی شود. لازم است که با رنج و مسایب گوناگون امتحان شوید چنان که مؤمنان قبلی مورد امتحان واقع گشتند پس آگاه باشید تا نلخزید چنان چه با آسمان پیوند قوی داشته باشید زمین نمی تواند هیچ آسیبی را به شما برساند هر زمان که به خودتان ضرر می رسانید به دست خودتان میرسانید نه به دست دشمنانتان چنان چه تمام عزت و زمینی زمینیتان را از دست بدهید خداوند در آسمان عزت و احترامی کم ناشدنی به شما خواهد داد. بنابراین او را رها کنید. لازم است که رنج و آزار ببینید و از بسیاری از امیدهایتان بی بمانید. در این صورت دلگیر نشوید چرا که خدایتان دارد شما را می آزماید که آیا در راه او ثابت خدم هستید یا نه؟ اگر می خواهید فرشتگان نیز در آسمان از شما تعریف کنند پس کتک بخورید و خوشحال باشید، فوش بشنوید و خدا را شکر کنید، ناکامی ها را ببینید و پیوندتان را با خدا نشکنید شما آخرین جماعت خدا هستید، لذا اعمال نیکو را آنگونه از خود نشان دهید که در آخرین درجه از کمال باشد کس از بین شما سوز شود همچون چیز کسیفی از جماعت دور انداخته می شود و با حسرت می میرد و نمیتواند هیچ آسیبی به خدا برساند ببینید من با شادی و خوشحالی بسیار این خبر را به شما می دهم که خدایتان در حقیقت وجود دارد اگرچه همه مخلوق او هستند ولی او کسی را انتخاب می کند که او را انتخاب کند او از کسی می آید که پیش او برود کسی که به او عزت دهد و احترام بگذارد خدا هم به او عزت می بخشد. دلهایتان را صاف کنید و زبان و گوش و چشمهایتان را پاک کرده و به طرف او بیایید که او شما را قبول خواهد کرد به لحاظ عقیده خدا از شما این را می خواهد که اعتقاد داشته باشید که خداوند یکتاز و محمد صلی اللہ علیه و سلم پیانبر او و خاتم الانبیا هستند و از همه برترند و پس از ایشان هیچ پیامبری نخواهد بود جزان کسی که با آن حضرت اتحاد کامل پیدا کند وی می تواند به مقام نبوت برسد زیرا خادم از مخدوم خود جدا نیست و شاخه از ریشه خود جدا نیست بنابراین کسی که به سبب فنای کامل شدن در مخدوم از خداوند متعال لقب نبی را دریافت کند هیچ خلالی در ختم نبوت ایجاد نمی کند چنانچه اگر در آینه شکل خود را نگاه کنید دو نفر نمیشوید بلکه تنها یک نفر هستید اما به ظاهر دو نفر به نظر می رسید. تفاوت آن تنها در اصل و سایه است اراده خداوند متعال درباره مسیح معود نیز این گونه تعلق گرفته است راز این فرمایش حضرت پیامر اکرام صلی اللہ علیه و سلم که می مسیح معود در قبرم دفن خواهد شد نیز همین است. یعنی وجود او گوی خود من است. وی هیچ دوگانگی و درنگی با من ندارد. مطمئن باشید که ای سپن مریم فوت شده است و قبرش در کشمیر سرنگیر محله خانیار واقع است. مؤلف در رابطه با خانیار در پاورقی نوشته محققان مسیحی همین نظریه را ارائه دادند. رجوع کنید به کتاب سوپر صفحه 522 و اگر درباره این موضوع شرح بیشتری میخواهید به کتاب ما تحفه گر روی صفحه 139 مراجعه کنید. ادامه ای مطلب خداوند در کتاب عزیزش خبر وفاتش را داده است. و اگر مفهوم این آیه چیز دیگری است پس خبر درگذشت عیسی ابن مریم در کجای قرآن درد شده است. اگر آیاتی که در مورد وفاتش است معنای دیگری دارند چنان که مخالفان ما تصور می کنند آنگاه گویی قرآن در هیچ جایی به مرگ او اشاره نکرده است که آیا روزی میمیرد یا نمیمیرد خداوند در مورد مرگ پیامبرمان صلی الله علیه و سلم خبر داده اما در تمام قرآن درباره مرگ عیسی خبری نداده است در این کار چه رازی نهفته است اگر بگویید که در آیه‌ی فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم سوره مائده ايه 118 ترجمه مترجم هنگامی که مرا وفات دادی پس از آن تو مراقبشان بودی نکته از همین آیه معلوم می‌شود که حضرت عیسی علیه السلام دوباره به دنیا بر نخواهند گشت چرا که اگر قرار بود ایشان به دنیا بازگردد در این صورت این پاسخ حضرت عیسی که من از منحرف شدن مسیحیان خبر ندارم کاملا دروغ تلقی خواهد شد زیرا کسی که دوباره به دنیا بیاید و چهل سال زنده بماند و میلیونها مسیحی را ببیند که او را خدا میپنداشتند و صلیب را بشکند و تمام مسیحیان را مسلمان کند چگونه میتواند در روز قیامت در مقابل خداوند بگوید که از گمراه شدن مسیحیان بیخبر بودم ادامه مطلب این آیه به وضوع بر این موضوع دلالت میکند که عیسی علیه سلام قبل از منحرف شدن مسیحیان فوت شده بود اگر معنی آیه فلام ما این است که خداوند او را به همراه جسمش زنده به آسمان برد آنگاه چرا خداوند در تمامی قرآن یادی از مرگش نکرده است در حالی که فکر زنده بودنش موجب به صدها هزار نفر شده است گویی خدا بدین دلیل او را تا ابد زنده نگه داشته است که مردم مشرک و بیدین شوند و به عبارت دیگر این اشتباه مردم نیست بلکه خدا خودش این کار را انجام داده تا مردم را گمراه کند خوب به خاطر به که بدون پذیرفتن مرگ عیسی عقیده صلیبی از بین نخواهد رفت پس چه سودی دارد که وی را در تضاد با تعالیم قرآن زنده بدانید بگذارید وی بمیرد تا این دین زنده گردد خداوند در کلام خیش مرگ عیسی را اظهار نموده و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم او را در شب معراج در میان مردگان دیدند پس آیا باز هم قبول نمی کنید؟ این چه نوع ما نیست؟ آیا روایت های مردم را بر کلام خدا مقدم می دارید؟ این چه دینیست؟ معلف در پاورقی می نویسد. آیای در قرآن کریم به سراحت به کشمیر اشاره می کند که عیسی و مادرش پس از واقعه به کشیده شدن به سمت کشمیر رفتند؟ خداوند متعال میفرماید و اعینهما الی ربته ذات قرار و معید سوره مؤمنون آیه 51 یعنی ما عیسی و مادرش را در تپه جای دادیم که جای آرامی بود و آنجا آب پاک یعنی آب چشمه ها بود پس خداوند در این آیه تصویری از کشمی را میکشد و لفظ آوی در لغت عربی برای پناه دادن از مصیبت یا رنجی به کار برده می شود دقت شود که پیش از واقعه صلیب بر ایسا و مادرش روزگار مصیبت باری پیش نیامده بود تا از آن پناه یابند. پس معلوم می شود که خداوند عیسی و مادرش را پس از واقعه صلیب به آن تپه رسانده است. ادامه مطلب، و پیامبر ما صلی اللہ علیه و سلم نه تنها گواهی دادند که ایسا را در میان ارواح مرده دیدم بلکه با مردن خود این هم را نیز آشکار نمودند که قبل از ایشان هیچ کس زنده نمانده است در واقع همانطور همونطور که قرآن را رها می کنند، سنت را هم رها می کنند چرا که مردن از سنت پیامبر ماست اگر عیسی زنده می بود آنگاه با درگذشت پیامبر ما به آن حضرت بی احترامی می شد بنابراین تا زمانی که مرگ عیسی را قبول نکنید شما نه اهل سنت هستید و نه اهل قرآن من هرگز منکر شعن و منزلت حضرت عیسی علیه سلام نیستم اگرچه خداوند متعال به من خبر داده که مسیح محمدی از مسیح موسوی به لحاظ شعن و مرتبت برتر است اما باز هم من برای مسیح ابن مریم احترام بسیار زیادی قائل هستم چرا که از جهت معنوی در اسلام من خاتم الخلفا هستم چنان که مسیح ابن مریم در سلسله اسرائیلی خاتم الخلفا است در سلسله موسوی مسیح ابن مریم مسیح معود بود و در سلسله محمدی من مسیح موعود هستم پس من برای او احترام زیادی قائلم هم که همنام او هستم محسد و کسی که بگوید من به مسیح ابن مریم احترام نمیگذارم گذارم بلکه مسیح جایگاه خود را دارد من حتی به هر چهار برادرش هم احترام میگذارم. گذارم در پاورقی می نویسد ایسا مسیح چهار برادر و دو خواهر داشت همه آنها خواهر و برادر واقعیش بودند یعنی فرزندان مریم و یوسف بودند نام چهار برادر او یهودا یعقوب شمعون و یوزس بود و نام دو خواهر او آسیه و لیدیا بود. رجوع کنید به کتاب آپاستولیک ریکارس تعلیف کشیش جان ایلن گارلز، منتشر شده از لندن سال 1886 میلادی صفحه 159 و 166. ادامه مطلب چرا که هر پنج نفر از یک مادر بودند و نه تنها این بلکه من هر دو خواهر عیسی مسیح را نیز مقدس می شمارم. چون همه آنها از شکم مریم بطول متولد شدند و مریم صاحب آنچنان شعن و مرتبتی است که مدتها خودش را نگه داشت تا عقد نکند و سپس به علت اصرار زیاد بزرگان قوم خود و به خاطر باردار بودن عقد کرد اگرچه مردم اعتراض می‌کنند که چرا برخلاف تعلیمات تورات در هنگام بارداری عقد نمود و چرا پیمان بطول بودن خود را به ناحق شکست و چرا بنیاد چند همسری را نهاد یعنی با وجود اینکه یوسف نچار همسر داشت چرا مریم حاضر شد به عقد او درآید اما من میگویم تمام این کارها از روی اجباری بود که برای آنان پیش آمده بود در این شرایط آنها مردمی شایسته ترحم بودند نه سزاوار اعتراض